مزدیک میشیم و قرار ما برای پخش رادیو فیلم ساعت 9 صبح عادی است رادیو فیلم کلاه قرمزی و بچه است که تا یک ساعت و سی و, د... سی و شش دقیقه پیش رو تقدیم میکنیم به شما رادیو فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه بازیگران ایرج تحماز در نقش آقای مجری حمید جبلی قاضی خسرو احمدی سرکارستوار عیسی یوسفی پور سرکار اکبری صدا پیشگان حمید جبلی، محمد رضا هدایتی، بنفشه سمدی، موسیقی محمد رزا علیقلی بولی کننده و مجری حمید مدرسی، کارگردان بیرجه تحناس گزارشگر تلویزیون در حال تهیه گزارشی از یک خانواده است که کنار خیابون زندگی می کنند. که شما در منزلتون مشغول استراحت هستین، حسن خانواده هایی که از این نعمت بی‌بهره‌اند. مطلشید این خانواده‌ای مدتی کنار خیابون زندگی می کنند. همینطور که بینیم وضع مناسبی هم ندارن. ببینیم چند کلمه با این خانواده صحبت کنیم. گزارشگر به سمت کلاه قرمز می که تو رخت خوابش نشسته، با گزارشگر با صحبت کنه. عزیزان، اینجا. این ببین با هم رو خبرنگار داری بگو چی میخوام؟ خ تلویزیون بودم بلتم چه مدتی اینجا زندگی میکنید مگه خود تو خونه رو زندگی نداریید؟ چرا؟ ما خیلی خونه خوک داشتیم خیلی خیلی قشنگ بود. ولی خوف یه دفعه اینجوری شد دیگه اونجا رو نگن تو سرفرست خانماده که مثلا خافه آصبح با هم مواظب باشه سنگ نگات برو گاز بگیره چه روز روز اینجوری شد؟ پسرممه؟ بله پسرممه؟ اومد خونمون اید نرف اینقدر مود تا این براسرمون اومد آش دوست داشت میخواست آش درست کنه آش درست کنه بله دیگه اجاقاز ما خورجی بود الان خیلی خوکشلاها بانو اومد پسرامه هیزان دیختوش بول رفت هوا انفجار همه با هم ها هیچی کمکتون نکرد، دوست فامیل کمک کنه، همه خندیدن، گفتن عقل تو چلنه‌تون نی، هگ خاک، نه همه خندیدن. از مسئولین محترم کسی به تو سر نزده تا حالا؟ اوه اوه اوه محصولین رو نگهدل و خیلی کبابه انقدر خودشون گفتن ما خونه نداریم سر خون بیان نداشه آقا شما تو تلویزیونی به محصولی میگویم به این محصولین خونه بدن که هی نگه ما انقدر اجاره نشینیم بعد شما شماا هر پیام میداری میتونیم آببدیم من کوچش درشونم که پیام بدم شما چی پیام ما بدبختیم. کنار خیابون از دویه یک قاب خالی تلویزیون برای کلاقه امزیو که سرخال برنامه صبح گاهیه چون قناب خدا بچه ها سلام خوبین خوشین سلامتین میبینم که بعضی از بچه ها و سرحال و خوشحال الان نشستن مهم. برای چی؟ برای اینکه برنامه خودشون رو بدینن اما متاسفانه وقت برنامه داره تمام میشه اخه. بچه ها باید صبحانشون رو بخورن که قشنگ برن به مدرسه حالا ما میتونیم فقط برای شما یک سریال قشنگ پخش کنیم سریال؟ با بچه ها چه تلفیسیونی ما داری هیچ چست نداره بکنم چون خودم یه کارهایی این سریال سریال بسیار موفقیه که بچه ها خیلی دوستش دارد آقای تلفیسیون نریتون خیافوما وستانبالت بیایی بچه ها از ما درخواست میکنن که هر این بردوار رو برشون پخش بکنیم خیلی تلویزیون لنگ درجه سه آلیه مدری قاب خالی تلویزیون رو روی رو سرش بلند کرده و به سمت مبر میره مرگی رو برداشته و توی قاب تلویزیون لنگ میزه سریال مرگی تمبع سابونه حاضره سر صفره سابونه میشینه این ام کرده امرو فکر نکنم تخت کنه خیلی خیلی داره میگه هر رو هر رویه شیکم بزن خراب خراس بحبه. میشه بحبه صبحانه بحبه شجا جهان بفرمه نیمم چرا امروز من میلم به صبحانه نمیره. هر روزه هر روز هم میگی اصلا هیچی نداره که بخونی شیشه شیر خالی مگه صفت داده توش اصلا هم که هیچی نداره مرچه ها میان زبونه شینا میوالن بهش میرن شیرین نیست تازه اونو نه اگه بخورین لپ تا سواحح میکنی از انگباتونت میاد بیرون فریدین فرنیرم که کردی تو شش زندانانی هرروز ما نو مایم بهشین شش که ما بود داگه موقع تمام بشه اگه چی بخورین؟ امروز میخواام بهت پنیر رودم. ما این پنیر پانیر نخوردن ندیرم بزنی پانیر مثل کرس یا حل برده بوشن کافیه از سرمون زیاد بدین بریم گواش بگیره جباش، جباش. در نره در دامه قلب و صرف بنده آقوش نفسن شه آه آه سلاش کرده نه میخوام بیس بگیری امروز به خاطب این بگیرن این اگه صفت نشن همون یک کتا بسشه ما اصلا من اصلا نمیدونم چند وقت میگی بران یه کپش کمش میخورن اونان که نخریدی که گفت میخرم میخره بچه ها شادی کنن به مدرسه نمیرم کلا غیرنزی که فقط یلنگ چک مکوشه لیلی کنان و آغاز کن به سمفی مدرسا یلنگ پا پا در هوا با کل با کل آقا یلنگ پا یلنگ پا دارن میرن دیمارسه برای مخشو کنم بسه شاید ابل بشه از همه بهتر بشه شاید ابل بشه از همه بهتر بشه شایده ابل خوفه از همه بهتر خوفه بچه ها رو میبینم نگنگه دوتانی خوفه با از که دکتر بشی نه نه محمسی خوفه با از محمس بشی نه, نه نه بیزی نس با از بیزی نس بشی آها. نه نه پلانجور خوفه پس سر یه اولاغه که برای اونم آواز میم سر اولاغه از این آنه چطوره خوف و خوش و سلامتی کار چطوره اوناب جان ما با حق داشتی شما فانگه های هیچ وقت درخون نبودی شما های که نبید مثل به اول بکشید شاید از همه میتر روبه شاید رفت از همه میتر خوفه مگستی داره سر کلاقه ارمزی میچرخه کلاقه ارمزی هم همراه با مگس سرش هی میچرخونه Jana mama set kojan jifon ketaset kojas par mere bilgar ding dolis le min jan ding dol ben sar min jan ding arao avans tana so he magazine sings singsi zi zi re magazine وام میافتم ما با جون منو دانسان سیون با جون منو هر روز که واسه اینا ما منو مخم خلاص با ما منو دارم میافتم ما با جون منو میگم منو میگم منو میگم منو حالی معلم تو کلاس به بچه ها درس میده اما کلا قرمزی خوابه که معلم متوجه اون میشه چند بار صداش میکنه خب بچه ها ما باید یاد بگیریم که به همدیه محبت کنیم کلا قرمزی معلم به سمت کلا قرمزی کلا قرمزی چی شده؟ این پنجان ها دوز اومده مارمونه کرده که چند کلا قرمزی نه نه چه کلاسه اموز من اشخاطه نوشتیم؟ با نوشته باشم قربون دست فن ماله شکیف خودت از تو کیف هم وردار من جیون ندارم میخواد از کیف اون دفتر و کتابشو بیرون بیاره که آخی اون بچه گولوه. سرخونه و مجری در کنار اتوبان جایی که برای زندگی انتخاب کردن در حال ساختنه یه دست شید چهلی آدم معلوم زشته؟ برای تو وارد میشه؟ مشغول بس با همه کلا قرمزی که از مدرسه اخراج شده به اونا نزدیک میشه باز دو بار سنت بار گفتن این مادر گربه ها رو دعبا نکن پیشتش کنی این فرم کنه من مامانی چند اومد میره تو چیف من قایم میشه حالا اخ... چون ول وول میخوری نکنی بچه گربه تو جیب شلوارته نه گربه ها رو از مرسه اخراج آ خب به چته هر روز میرفتم دستشویی تو مدرسه. البته واسه دست کندم من میرفته ولی خوف خب امروز اخراج شدم دیگه نتونستم بده. برو دستشوی. این کار داره این به درستش درد نداره اصلا نه در داره نه دیوار زریف مونده خب کجا برم آخه برای این خونه امسایه این سرهنگه دیگه اونا که اصلا نگو دفعه آخر برای اصلا که گفت دیگه نایه این تن لفه ها خب برای یه جایی دیگه این همه خونه پلاق اینوزی از شدت دستشوی به خودش میپیچه آفتابه به دست در خونه راجرخانو میره با عجله زنگ خونه میشه سماغه راجرخانو حالت خوفه علیکه سلام بله میدونی که من بچه ها رو خیلی دوست دارم بچه ها توفه خانو نمزه بچه ها دباره بیاد بره درزجون. سلام برسونی مرحبت عالی <تصفحت> بازم آفتابه به دست در نغازه میسیو میره اگه اومدی واسه ناس شوی هیچی خودنه قرم گفله برقم رفته آب خودم قطعه کلیدم گم کنه زنگ بزن صدا نمیرم چند لیان کمکه از توالت دیگه خبری نیست آخه چرا آقای موسیان امروزم گفتی توالت میخوام ولی بعد فهمیدم رفتی اونجا رخ شستی اونجای دیگه پسر این همه مغازه آخه شما موسی این خونه ای هستی؟ تو شب به میدم دستمال کار از این بیخی چش سس میخی؟ اونم بیچش ولی تو آن نیست. <تص> موسی و گرلویک آشتو بار خشتو برنگ لابن گرنرنگ شاید امسی رو میره با خدا. خودم قرمزی به فروشگاه لوازم ساختمانی میره انواع توالت فرنگی ها رو میبینه میخواد توی یکی از توالتها ها کنه اما صاحب فروشگاه مگه میذاره دارین دستم و سنم نمیرسه نه تم با وفو گیرم باز التماس باز التماس میگم من مشتری دارم مبارکه مدل بالا سلف کلومرت برو یه ساعت دیگه بیا چشم تا یه ساعت دیگه که من تو محل آبرو ندارم دبارو میگم دردارو بگم دوباره آفتوبه به دست ناامید رو میفته تینکه یه خرابه میدینه و خرافه. از نظر خودش بهتر اینجا برای دستشیر ای کردن کسی نیست اون بارم که کسی نیست اون که کسی نیست جان جان کسی اینجاست که یه دفعه یه سگ به اون حمله میکنه و فرام کنار خیابون پسر خاله با یه فانوس آویزون از, آز, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> از درخت داره صحبت میکنه آقای موجی هم داره شلوار شده کلا قرمزی رو میدوزه بارون اومده هم کشیدی برات نفت نگیره. باشدی که اون گرنگی شرف سگی ببره مایسانم ما در همچین داشتم فرام میکردن کمشم انداختم خیال کنه سنگه منو خی برداشت دا گفتم من ما مال دنیا چی دارن به زقل نکن اون دلش خوش باشه ایره به ز... بترم نزنی سگا کپس قشنگ باشه میخورن آدم گوشنش بشه سنگم میخوره میگی آه. من بچه بودم امت... <تصفيق> زیرش این آب شسته بودم آه. ولی نمیشه شما اینطور نکن که خورد و خوراکت خوبه ایجوقت گراسنه نبودی خیلی سیره سیران که نبودن بگه آیر جی میشه یه روزی که من هر چی دلم میخواد خب. داشته باشه؟ بله که میشه بله, بله, بله که میشه همه چی شدنی آخه من خیلی آرزو دارم زیاد <تصفح> به سرخاله نگه باعثی به فرشته های آسمون بگم ای ای میدونی آدم هرچی ها تای تای تای دلش بخواه مرسور مست کناقی رو نزی روی یه تخت سنگ بزرگ نشسته و به آسمون نگاه میکنه و آواز میکنه در این فرشه یه روف از آسمون نگاه کن ببین چه در دیگاه بیا در دندبا بگو هر که هرچی میخوام پاسم کنار بزارم بگو به همراه باد سر راهم بیارم سر راهم بیارم یه جفت کبش یه کبش خوبشه نیمان کن ای فرشته رو پیشونیم نبشته نگاه کنی فرشته رو پیشونیم نبشته صدار زداره صدار زداره صدار زداره, زداره فرهشته جان فرهشته جان رفتی فرست افرام آین شدی قایموشک شایست صدا نویش الان بایی میسن صدا بیشتر بره میخواد بایی که یهو ها پت میشه تو طور دل میخوره با میاد پایین تا به یک برخورد میکنه از جش بلند میشه آه چه چه؟ کنچه با کنچه با کنچه با درختان کلش رو می آورن جلوی من نواره زمین می جلو سنگه می آماد می خورده نه می رفت هم پاره او اون چیه؟ کالسگره پیش آقای موجیو به سرخاله می بچه؟ اه اه تو باغ بو با؟ بچه کیه؟ چندونم؟ هیچ شنسی اونجا نبود که؟ سردفعه بهت گفتم یه چیزی پیدا می کنی بر ندار الانم ببر سر س اوه این هر چیزیه این هر چیزیه این نازدان فاکله <تصفيق> چرا شکل کلا قرمزیه شکل چیه آقای موجی پاتوی بچه رو از رو سرت اش کنار تا اونو ببینید وای بچه خیلی شبیه کلا قرمزیه بچه‌چیر چه شکل تو منه آخ بابا بابا دادا بوس بابا بوس چرا میگی تو آباد عدد موس؟ خب به بچه ها اینا رو میگن دیگه. رفتی قدم بزنی چرا طول کشی؟ آخه داشتم با فرشته درد دل میکردم این فرشته خانوم کیه؟ فرشته خانوم کیه؟ فرشته آسمونا اون که تو ابراد داشتم باهاش حرف می‌زدم. نمی‌دونم چهجوری از اون بالا پشت پا گرفت افتادن زنی خل و آدم پایین اینو پیدا کردن. پس این رابطه به تو نداره. او او او او. یعنی این بچه مال من باشه؟ اوه ما هم تو من زن دوبا پانزاش من بچه میخوام چیکار؟ سر پیری و زنگولم پا تابون اگه مگه اگر هراش دست خودم دارم میخونه دیگه چیزی که به تو مربوط نیست رو ببر بزر سر جاش پلاغه مسی بچه رو به جایی که پیدا کرده بود میبره کلاغایی زیادی اطراف بچه و پلاغه ارمزی هم بچه توی این پستونک میکنه مادر بچه کنجایی چین چی ندید و صداد میکنه اه چش بچه اه, اه؟, اه, اه. کلاغا کلاغا شما یه بچه قو نکردین؟ بچه جا با این بچه کانجا بازی کن تا پدر آدر دیان پیدا تنه هر جا باشم میان دیگه من وفتن خدافه گلاغ نیزی بچه رو همون جا میذاره و میره پیش مجری و پسر خاله ماما بچه تهتا دوزه شیستر جاش بله بانه کوزوش ده نکردن از همونجا که پیدا کردی گذاشتی همونجا دیگه بله دیگه خانادین پیاز پیانوس نکنی عکس بنزیو گل گل ما اعصاب سوال جواب ندارم ها بی‌पना تسلم معصوم سای چیزی سری سگی ما گفتش ما بعد کجا آهای بچه دنجام کنی در کجایی بچه بچه کجایی از سگم که خبری بی در... همه رو گردی تو این تنه بچه گروه از روی رخت خواب کلاقه ارمزی میدوه کلاقه ارمزی بچه رو پیدا میکنه و بیاره پیش مجری و پسر خاله ام. بچه شما ما اون برای نویرم و بازه باشه ترس و با مرغه من فول ندارم تا اینکه دیمه نداری ای ای ای قصامت پیداش کردی؟ وقتی پیداش کردن داشتی تو جوفه آ بچه ایم شد شکل تو ب... باز تحمد قیبن بچه جا خودت بگو ارقا خون من تو قبلن هم رو دیده بودین بفرما بفرما حرف میزنه این آقای مرجیه دیگه. یچی؟ اینم پرسرخان جان. <تصفح> نازدار نازدار. این جان خونه قشنگمونه. نگاه کن. یچی؟ اینا خودمان دیگه. آقای کلاورمنزی. یچی؟ میگم آقای ورجی بگر کالاشکه، قنداق، شاید نامه چیزی داشته باشه. آره؟ آره؟ ببخشید، ببخشید. ببخشید، ببخشید. کی نداره؟ شوکولاتی؟ نه. افتواب. ماجی مشغول گشتن کالسکه بچه میشه هه هه، دوم دیگه را. باشه. شوکت. اون زیرشم با کن آخه ببینیم بچه چیه؟ اون داقه بچه رو باز میخونه تا به اصرار کلا قرمزی ببینی که بچه دختره یا پسر که؟ آها. دختر آخه قنده اصله مثل خودمه بچه روی آقای موجی؟ بچه بیترین هوایی؟ اه خجالت بکش؟ بیا آقای مارزی کنبالت عمومیه؟ عدف، طبیع نتونیم بچه اینقدر نگر داریم؟ ما نمیتون بچه هست دیگه آقای مورجی عقلش اوه سکر ایفوی نه یک ای کاری دیگه داری میکنه بابا حالم به هم این دیگه چیه چرا این رنگیه چی خوردی بچه جشته من نمیتونم بچه اینقدری بشورم منم نمیتونم چرا همه به من نگاه میکنی؟ من که اصلاً اصلاً بالد نیستم کل آقای امزی بچه رو با خودش میبره پیش خانمایی که کنار رتخونه لباس میشونه این بچه رو خوف خب اینا لباسه فقط نه چرمه. برای فشه کسیه که فرش میشه خلاسه اونو میبره مغازه اوتوشویی و از اون آقا هم میخواد که بچه رو بشورد بساب ملافه میشوریم این بچه رم پیران بیرن این بچه هم بشورد شلوار میشوریم بیرهن همه می حمله رو سیراد تمومه برده راخت بچه‌ها راحت شوهرام ای داد که میشه بچه‌م میشوری بچه‌م میشوری بچه‌م میشوری بچه‌م میشوری بچه‌م میشوری ما اینجا لباس میشوریم بچه‌ نمیشوریم که خب اینم بنشو چه فرقی میکنه ولی اتوش نکنی میشه مثل مبقا گرفتار میشی شاستی هم باد ببرش مثل باد مادر یک کار ما بچشویه اتوشویه ای اتوشوستی نقلا فقط لباس میشوری دیدم خودم خب اینم منداز این تو یک چرخ میزانه تمیز میشه این فکر کنه هم درگاه رفته هم شغل بازی خب عزیز من بچه رو بندازم تو دستگاه خفه میشه میمیره رفیق شان نذارین. بذند هستین که دانش با زه اون کار نمیکنه، توش مواد ریختن. مواد؟ خدا مرگم بده داداش. مواد دادن که می‌ریزی. میخوای بچه‌م محتاط بشه. نخواستم بیام بریم و جان بیا. حالا میره کارش. جایی که ماشینا رو می‌شورن. اینم بزار رو حاوی ماشینا از اون طرف همیز میاد بیرون دیگه اینجا کار باشه آه کار باشه کانسفی باشه اکشالی نداره خب اینم به شوری عیبی داره نمیشه اینجا فقط ماشین خب کن اینم ماشینه دیگه فقط صندوق عقبش کفیس شده اتاق سالم سپیرومه اینم ماشین؟ یه پایمه میدم الان صاحبش میاد چنج چنج چنج میاد بچه رو میبره هموم اهمی زنونه اینجا داشت میمیدن که تاس که نداره نگاه کن اون برا این براه نگاه کن دیدی دی. همه میان تمیز نشه من انا زگه تو بودنه انقدر از هموم نمیترسیدنه سهی گفتن که میشه دوباره برا هموم آبا جا <تصفح> <ها. ها. تصفح> اونجا هموم درونه بودم میدونم زنونست بودمش مردونه <مش> مردا بلد نیستم بچه بشنن همه آبادمش زنونه بچه بودم کجا بری بودم شده مادرش از کجا بیاره این بچه گم شده مادرش رفته نیست کجا مانو گذاشته با این بچه صد سیاه زرطان تشنا هیهه چش چش کلاغیموزی به بغل میاد تو خیابون یه نوازنده آکاردئون داره ساز میزنه کلاغیموزی همون اونواز میکنه بچشو میشوره این کار میزاره اون کخنه نداره یه پسر جان این بچه دومکم گفت باید بدانده پلیس پس آخرین حرکات رو موضوع نتم بکن اونجا از این خبرانی نه نی نه نی نی ما بچه رو میبره کلانتری که شاید بتونن مادر بچه رو پیدا کنن اونجا همه از افسر و سرباز و سربون دورش جمع شدن و شد. دماخشون گرفتن چون بچه بو میده بوی چیز مادره بسه, بسه این گم شده این هم اون دیگه این گوم شده چرا این کار بو میده مگه حقی گم بشه نهانتو نه بو بده این بچه چین کجا کونجا بو بیده کونجا بو نه این بو بده چرا شکل توه؟ شن کن ما نه خانم آقا اکبر این شکل کیه؟ این ها این شکل ها شکل این شکل اینه آه، بفرم، اتواری هم بابیده چی؟ بنچه جام بیان تا این اینجا بایده. نه، نه، نه، حرف برد نزد بچه جام بیده، بان نه، تو بود گل میدی، خیلی هم تمیزی، من رو گفتن، گفتن منو گفتن چی پولیس هم تهمت <تصال> <چه؟ تصال> <تصال> من زنن دو باست اطلاقه مرگره کی داده کی گرفته ارداده رو جنرماره فردا بیا فیتینه فردا تحتیله چیه باید فرده باید سرکار آقا باید کلونی یه چیزی بزن ببینم اینجا اکبری بله این بزن چشم چشم برو اون پدگی در رواز کن این بچه هم هدایت کنی بره تو این آیاد بفرمایی نقا خودش نینی رفته؟ از هم بینه اینجا رئیس کیه من میخوان رئیس رو ببینم باید صفت کنه رئیس منم آقای رئیس سلامی حالای خوفه سلام آقای رئیس این بچه گام شده بزه هم بشورینش هم رو پیدا کنی فقط فقط چی؟ فقط نم زندان دنست چی فکر کسی کرده از دیوار خونه این مردم بالا رفته کلافردانی کرده فقط یه خرابکاری خرابکاری. آهان آهان فهمیدم تو اه اه کجا دیگم ای تو پاک اکبرین بله این مطمئن چرا آزاده مطمئن تو زندان قربان این یکی که خوله رو منفجر کرد سه بار گرفیم دش کرد. منو میگه ولی اون تو زندان قربان اه, اه, اه وغویارانه شی اتفاق سایه اکبر به سلول رفته و متهم میاره اصلا نگهبان حالش از پوست پاره بچی در اومد و تمره خرابکار بیا بیرون ببینم ها ها کلو کارمسه کلو کارمسه این سلام مزجان ها بار بزن؟ مبارک هم؟ بچه عروسی؟ <تصحيح> نه پسرم بزن جان عروسی چیه؟ اگر ازدواج کنن که تو باید ساقه دوش باشیم <مید> مثل که شما هم دیگره میشتنسین آره؟ بزن؟ بزن؟ این متحمی ختم های که فامیلته؟ اصلا پسرم بزن جان نداریم که آشنوس داشته باشه خونه ما فجر کنه همساده ها منش چکاید خودمون فراری و عروسی کلوش! سرکار عروسیه! عروسیه! پا پا عروسیه! یه! بچه نگو بناو بگو او بایی چه نگو بناو بگو بچه نگو بناو سره بیارم چه همه یه هم زویه ها امردم عقصه سیدیه نفسد راحت میکنه آوه! خنش میز؟ تو تو اون بچه رو ببره بشورش مادرش پیدا شد صدا بکنم من نیتونم بشورمش من آجزم من حال تحوال میگیرم اگه بشوری نش شو اصلی بتونم ببرم عزیزم کی بشوره سربار متهم شاکی میدون اینجا کجاست من بشورم من بشورم من بکنیم بچه کلاغرمزی از باورنه خودو باید باید باید چی میگه؟ میگه فامیل به چه دردی میخوره بچه کلاغرمزی جان مثل جوجه خودم میمونه دندم ناب چشم به تاق پشتم به دیفار آب زیر پان دستم تو میچی؟ میشوره بچه رو؟ بله میشوره ما با دختری میگورم که بالا میاد نه بابا حالا حالا ور میذارم تو میگه دست هر شب لوزه اینطور خبر میشی جونیا بابا اش باش شو که ما دست می می دیتاستمو پاس کنی میشورم پسرام میزن میخاط بچه رو بشتامو بچه نمیذاره که پسرام میزن جان نه تو بچه را اوه این هماش میزن باز چند بیادبی حیمانه بگذن مامان بشورم اکبری به اتاق افسر نگه بانه اکبری. چی شد بچه شد سی شد نه قربان میگه باید مامانم بیاد منو بشوره گرفتاری داشتیم گرفتاری آ برداشته سطلس بزرگه تشک پر آ من نمید بچه زور داره آ زور برداشت پرس کرد خورد تو سر این یکی این یکی باید در بره بیرون پاش رفت رو صابون رفت رو هوا اومد پایین بعد چیلنگ رو برداشت دو رو سرش داره میچرخونه میچرخونه می دوتا خورد تو کمر من تمام کبود رو کبود شدم یه دقیقه سب کنید خلاصه آخرش هم این این اگه بزرگشه مقاید چی بشه واقعا داغون پاغون شدن همه از دم. آخرش هم این بچه در رف. یعنی اون متهم خرابکار فرار کرد؟ نه متهم نه بچهه اونم رفت دنبالش اومد بره یه دفعه چیزی خود تو سرش قش کرد زمین بردیم زمین. زندانی توی سلول با یه زندانیه دیگه آبا. که مشکول نهاف کردنه داره هی هی هی هی هی هی حرف میزنه میگفتن تمام تن خالکوفیه امروز با خود کار که مال قدیم مادی ماست آخه من بودم و جلان و غلام یکی هم بود قلی هی چند از شما نه نه دور از جونشان 16 هفته قاب بعد دوام من بزن اونا بزنم من بزنم اونا بزنم من بزنم کافتا بزن. ماست خوردی ما کله پاچه خیال کردی باقالی من مخامو خوردی چند حرف بزن مخامو خوردی قضایتو بخور با چیم بخورم خودت قاشوک داری من که ندارم که خب برای از سرکار بگیم سرکار یه قاشوک بدیم خب برای از سرکار آقا جان آقا جان, آقا جان،, آقا جان، یادت رفتن قاشوک بدیم قاشوک از تو قدقنه باسه چی؟ اون دفعه که قاشوک داریم فرار کردیم فرار کرده؟ با قاشق یعنی يعني... من سبار یعنی آخ... آخ... من سبار قاشوک شدن قاشوک پرنده رفتن هم. هبار... چیگر منو برگرد تو پسر همه تلاه آزاده خودم سن چش, چش. من که من پسر همه زاجان که من کلا غرنزیه اون که بچه چه آبارده بود بچوندی فهمیدی که نه اونو شاسی نه مامونو بچه همو پیدا کردی، اون اون من اون هم. من تو رو خوب میشتسم پسر همه حقبال نه آقای نه بر... سهرکار جون گوشکو ببینم این راست میگه این بچه اون یکی دیگه بود, بود. ا ها ها همین یه قبالا دوست ولی این مخه من خوردن من هم خندم اون هرچی دوساری من جای دیگه برم خاطر آن خبره چه خبره چرا شلوغی میکنه؟ آها قصه قاطی تو بچه این چیه یه آش یا, یا سوپ چیزی کنار خیابون نشستن و سوپ روی اجاقو دارن درست آش نه, نه سوپی شد چیزی باشه چیه اسمش چیه این کمکی مثل چی مثلا لوازم و چیه با چرا بو میده بو نمیده یه بوی میده بو نمیده چه رو این بچه رو میده بو آره بو دن میده چی ریختم توش بودگره یه بویه بچه تو چجوری اومدی اینجا کلقه میزی کن ده گفتم میاد بچه ننم به جمع اونا اضافه کنم بعد از اون پسر همیزا هم میاد بزر من حساب اونا برسم بزر من حساب اونا برسم فجر ما در به در آباره خودشم فهمید اشتباه کرده دیگه هم دی م. م. میگم همسور از شکایت نکردن افتادی زنده میگم مگه زندان نبودی که ها شکایت کردن؟ افتادی زندان بعد من بعد پول جور کنم بدم خسارت همسایا تا تو آزاد بشی. بودم. زندان. زندان. زندان. نکنه زندان فرار کردی؟ بابا چرا؟ شوسته شو باشا گدا باشین. باشا؟ نمیخاد بشی. مگه زندان. باشو. باشو چی؟ ها؟ ی با باگوشی. باگوش نیام و باگوش نیام با با با نه نه نه نه نه نه به نه نه قرمزی نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ما کی سلول میرسه همه تخته سلول میز روز سر همسلویی حلق قرمزکی داره میزنه اون چی چخ میزنه میخونی هیچ آزاد نمیشه تو من خوشحال ها سلامی از زندان بیرون میاد و کلا قیمیزی از اینجان فراری میاد آخ پشت رو شد حالا چه جوری شفا رو دیفار بخافن سقف گدون فای آخ بابا این دیو نه دوباره اومه پنسارا میسن جان فاچر رو من خیلی میرن ولی با اون قاشا قضا نخماری اون چن بوی طبیعه بو طبیعت اکبر ببینم سرکرک بری به اتاق افسر نگهبانی چی چرا قیاست اینجوریه؟ باز اون زندانی خطرناک فرار کرده؟ نواربان یه اشتباهی شده احتمالا اونی که بیگناه تو زندانه اونی که خطرناکی فرار کرده در من چه گناهی کردم که تو باید نصیب من بشی؟ یعنی اونی که بچه هر رو و هیچ گناهی و جرمی مرتکب نشده الان توی زندانه؟ نیدونی یه سرکار اکبري به سلول میره. اون یکی کو. ها؟ آه آه آه آه. کیه کیه؟ ببین رئیس گفت که شما آزادی. من مظرت میخوام یه اشتباهی شده بودش. عذر میخوایم به هر حال بفرمایید. ها؟ آزاد؟ آزادی گفت به برو. ها؟ آزادی شما بعد بری. تشریف ببر. سرکار این اون نیست اون فرار کرده خودمون میدونیم فرار کرده رستگیرش میکنیم میدونم میدونی ولی همون که از آرگاه پسرم از تقبالا اومده و هم سلولشو کتک میزنه حالا نزن کهی بزن سیونشم رو بگم بلکشم چه تونه چه حرای بلکشم بگم برده کنم برده فقط خواهشم میریم بچه تو تمیز بشوریم مریض میشه حالا ما میگم نگردونی بزن تفکرگی میگونی بزن دستش یلا و نذار حالا هر کاری آقای موجی و کلا قینزی پسرخاله دارم بچه رو میشورن آقای موجی با آفتابه روی بچه داره آب میریزه پسرم نزا آواز خان به اونا نزدیکی بیا این شوسته نشده بیا بیا چرا شو آمده بیا منو ام ام چند سال همون مرفته دیگه نه دیگه نه نه نه دیگه نه اتنا دیگه نه فانز فایده چرا میگن جای مادرتو بهشته ما از هر روزه هر روز به این مادرا جایزه بدن که بعدشوری بیاون هم مونده تازه یه دیگه هر چی زرد بندم میام تمیز شد معمیر شد تمیز شد, شد. شد. شد. شد. بچه نا ن نا ن نا ن نا ن نا ن نا ن نشستن ن به ن نا سوپ نا ن نا ن نا ن خوشمرز از فدرجان ما قوشمه بچه قدر قدر با قدر رو بکنم قدر قدر قدر رو بکنم قدر قدر رو مزاجان تو خیان میکنی ما الان دلن لک زدی یه قشق از اینا رو خورنم هیچن نخیره چنم اصلا ما ميل ما تمایول باید باید باید الان همه میگیریم میخوابی؟ خب بعد صبح بلند میشیم صبح بونه ما فصل مخوریم خوبه؟ بچه جان خیال نکنی آقای مارجی علکی هر شب هر شب اینو میگهان ما ورزه خیلی خوفه فقط خوف مجرین رژیم بگیری که هکره ما خراف نشه دیگه <خی> زیادی خوردی ها سکی نه خورده سکسکه میکنه چه سکسکه میکنه یعنی چی؟ یعنی داره بگشتاک میکنه منون باید بزنی پشتش آروق بزنی خالی خالی که نمیشه من میزنه به گفت خاله جانم بخونه آقای موجی با قابل می زد میگیره و پسر شروع میکنه به آواز اون آقا خودپسه هم؟ دان بایینیم بود؟ آه ما ما حالا کی یا تا بگیرم یه بگیرم همین دیگه اما اما بچه‌نمه هنوز داره سکسکه میکنه کنه در با کلا قرمزیم با یه قرمزی چرا قرده داره عکسای یه کتاب احافی. که همش حیوانه بهش احافی. نشون میده. ده نشون از که حیوانه رو ببین نگاه کن، این شیره تو جنگله و موهای سرش بلنده ازش چیه؟ جوجوه خیلی خوب باشه یه بزن اون صفه قفلی بهت نشون دادن فیل دماغش نراز بود فیل فیل گنشاش مثل باد بزن بود تکون بخون اون اسش چیه؟ فیلم جوجو فیل جوجوه شیر جوجوه زرافه جوجوه همه آلم جوجوه یه آراخ بزن بخافیم اه؟, اه. اخو خب این بچه های دیگه کپا مرگم بزنگرگم یه آمان کنگرگم نخی نخی هیچه ها اینجورینی این چلاق قوه مال بزرگاست نمیشه بچه ها بازی کنن که برق و پر خوک میشین یا بزن. <تصح> بچه جان دار شدی که بگی مامان مامانو بخو این دیگه آخه دامی بخو خوبه سه این بچه مادر بانگیم آب و یه فرد رو من بناور استین قلو بزنم وگریم وای نه زن بستونه گریم و زن بستونه گریم وگریم نه خدیش نادردیکه فرد برام از شدم که خانومم بچه هامو نگاردنه آنوما سلاحی نه هربخونی خدا فه شام بخه صبر افتوه به خیر هو اروزن همین که می خوام بخوابم بچه‌ننه آروغ میزنه یه چیزی روزن ساکش اون کجا دیگه دیگه سل پنج چه جان قفه نترکیدی رو بیدار کردی که خودت یه خود مونفنج نشی ترکید ببینیم ما خوفیم دیگه ما خوفیم شبا آفتابی تون میه باشه همین که میخوام بخوابن خوری سسوش در میام آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ سر کلاس معلم داره درس میده و کلاقه امیزی داره میخوابه و بچه ننن همه مامان مامان عمال یه کلمه دیگه میخواییم بنویسیم ماما, ما... ماما. ماما. این ها چیه؟ ماما. صدا میکنه همون ماما مامانت بگیر بخواه بچه دیگه این مادر تانیزی خانم معلم خودشم بچه داره بیا الله لارفتین دیگه ماما ماما <تصفيق> <تصفيق> بچه خوند و خیلی بار چی افتادی سر کلاس؟ اجازه نه، دانا اوم فرست گفته میخوام بری مارسی، خوب مامان بازتی بیان تا الان مارسی ندیده بودیم، یه کنش یه چیزی یاد میده. مامان هم بچه داری کنه، هم داری. پس پس پس کلاس پس پس پس پس پس پس پس پس پس پس پس پس این, این چیه دیگه؟ پسر عممه میخواد واسه من آستین بالا بزنه. من ازدواج که خانوم این بچه رو نگهداره. شانسی مقشای منم بنویسه. بیا عروس. مجلس خواستگار. خواستگاری. فامیلین ما یه بچه داریم. اومدین خاستگاری که دخترتون این بچه رو نگرداره سفید برد بشه حکومت این خاستگاری بیده کار میخندن آشدت خندی سینی چونی از دست آرزان کار عروض خانو تا که نتیه سینی چونی بیاری؟ چجا میخونی بچه این منو بزرد خانی؟ پسرم بزار جان اونا به ما میخندن تو به چی میخندی؟ وای <تصفح> باید باید باید باید باید باید آه، آرزو خانم من الان در دارم نیو. چی؟ آه، آه، آه. شلوغ نیومد. آرزو خانم با شنیدن این جمله خیلی عصبانی میشه شه و کلا که این و پس از آن رو بچه نداره، اصلا پات میکنه. آپا بگر. مامان. فرق شکسته دامغانشی کسی عمل کنه. اونم سر باالا. بچه نانی در بازی میکنه. پسرکانه یه گوشه نشسته پسرمه و کلاقه اینوزی هم پشت به پشت و هم لبی ای این ای ای گفت برای خاصگاری خاصگاری سخته ما یه علکیه خاسگاری در نکم هرکی میره خاصگاری اول باس رفته باشه سربازی سربازی؟ نه پسرمه و کلاقه اینوزی لباس سربازی پششن و اومدن سربازی،, سربازی که نگم اینه نگاه چه جای خوبی آوردم. من خودم تو را آوردن من سربازی تیختری ها نگم چون روی که می سم من که منگر... آهای شما بسا اونتا او چیکار نکنی؟ شنش شنش شن بادم شن، شن، شن. بادم بادم بادم تو آسایشگاه کلاقه مزی و پسرمه هر کدوم با فاصله دور از هم روی تخت دراز کشیدن نمیذارن سربازوی بیچاره بخوابن براقه ب قرارم ازا وو فسانم ازا جان ها بگی بخواب چرا این سربازو رسی راسته کی خوابیده আরে فسانم ازا جان سربازا باعثی است احترامت کنه سربازا کی خوابه وو اه ها ها بود باباخو باباخو بخواب بخواب بخواب بخواب اه سربازا خوابیدا ها خوابیده روزه بزار های های ما بیگه پسار بزی پاس تو اروسی داش تاروسی با ما ما سلام این همه جوان دمن وقت انجان خافیده ما تا اس اروسی یا اس اینا می میشن تا صف خافشون نم برای بگیم بخواب بخواب شب بخیر سربازا کی خوابه ها بودی ها بودی کی خاله می تنها شده من سان من بپافیم بخواب بس نمیزه بس بخوابم اوه. چیه دو پاره آقای اون سربازا سفت بخافی این همه شما ما رو بیدار کنه نکنه بخافی بخافی بگیرد آقا بگیرد بگیرد بگیرد سربازا کلافه شدن از آسایشگاه میزنن این جا سالان قذاخوری پادگانه سربازا آواز نکنه اونا که میسن بیان به عنوان آشپز داره کمک میکنه اما هر کس आवाज بخونه بهش باشه برای اینکه خونه بیشتر که همین الان سنقوم دیگه افسرون ارشادت فادگان به سالن غذاخوری چطور خبره سبا قربان اینا شایده اصلا غذا نمیده یا کم میز یا شیر اخر به من داری؟ به اون دو برابر داری به من کم داری اون आवाज خون تام بخون شانسی بهت بدن آه، آه، آه، آه، آه. عزیزم چونه نزم قرونم قربعی پسرم نزا با یک کفگیر رستی یک دیگه بزرگ می رونم چه خبره؟ باید این نکش نکش نکش نکش قرونم نمیدی به همه کارا یعنی چی؟ چی؟ عوض کرده او کجاست؟ بین اسلام همشونه ملخصی ارتا همقدر زم میخوای ما هستی آباز بخونی بلتی؟ با اقت نکن یعنی بلد نیستن من میخونن یاد میگیری رضای هر شب مانون رو پومی رو حدسن پنسه یه شب پس دو شب بسن سه شب بسن, بسن بخورن یه نکنه روش نمیمونن بعد به رو ناکفتشون همین الان کولا قرمزی از پنجری بازداشتگاه پادگان با سربازی که سر پسته نگهبانی صحبت سر سرخن آقا جان ماشین ها و ماشینا و سروزها اونا کجای در هم میرن؟ در هم میاد میدانه ما رو؟ میدانه ما رو کجاست دیگه؟ تو خد. هره آفخونک تو ماشین چی بود؟ پس هم جان جا. این کسی آفخونک رو برده این اونجا چی کار داری بکنی؟ می کنم باز با قاشق کفیس سر داره از کف بازداشگاه نقد می به بیرون تا اینکه سر از میدان منوف در میاره بابا دشمن فردی که در اون طرف قرار داره می جنگی. اونجا واضحه هست که ما به اونجا حمله می‌کنیم و می‌خوایم اونجا رو تصرف کنیم. این یه دنگ نمایشیه. این جنگ واقعی نیست. ببینید دشمن فرده که در اون طرف قرار داره آخ آزادی چه توانی گفت پسرم بزنارو. میذارون، بمب بزن. چیکوام کردی پسرم بزنارو. اشتباه کردی. اپو این دستور. آماده. جنگی میشه. اما از رو روشن میکنه و مولی اونو به سمت فرمانده و به این طرف و اون طرف فرار کدام روشن و پیدا هره هره هره انکل آقل مزید پسلم بسا جان سلیم حالت خوبه اما هم به خودت سلیم کنگیش به چفت در تمام احبا اچنا خوشکره تو شوشکره اونتو را برمون درمه اونجا چه قبره؟ روغت چند کند خود سرچنه این مردم چی بده نجا برفته اونجا؟ بری توشکره اونجا شکره اونت بره درمونتو را برمونتو را برمونتو را برمونتو ببر ببر ببر آه ببر ببر ببر آه ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر ببر خود فرار میزن اوکه رفتیم رفتیم رفتیم رفتیم رفتیم ازران نزا جا با اون نمیتونی مسافر سمار کنی نمیتونی فوز دید من خیلی رفتم چود یاد که همون همسایه ها دارن با آقای مجیست هم کنم بچه مانی زیره که از تفریه که کنر خیبون گذاشتم بایم شده آرون گیلی آقا چقدر دختی؟ باز, ها. باز چی ای ای اه. اه. پسرم هم صداها باز شیکواید بیچاره آقای مجری خدا رزید بشه باز آقای مجری خدا رزید پسرمه مگه نگم من از زندان آزاد شدم میگه فرار کرده که سمای خان تففه نه نه الان فکر کنم زندان باشی به میگه رفته زندان کده. زندان به درد میخوره. این نامه درد من که بیشتر از این نمیشن. کجا بودی حالا؟ دنبال مامان میگشتم پیدا کردی؟ نه. بچم کو پسر خاله جان. ناز داره من اینجا خیلی شده بودی؟ پاک سلمه بیا بیرون بیا گیره نکن بناخره من برات مامان پیدا میکنم شبه کلا غیر از پشت پرده با یه دست لباس زنونه بیرون میاد و به بچه ننه میگه بچه جان قول دانده بودن قفل از خواف موانه تو پیدا کنن تیدا کردن اومده فقط باستی تو قهدش موریا خون ببینه چه خانوان چه گره این هم میپوشه موانه سرش کنجا کرد کنه شرباره چیست چلان کردن نه این دانه این باری باستی دارد هفتونی شیش بیا دیگه موان جان نهانی بیا اومد او بونش فردا بچه ی گلان مامان فدا شد مامان دو روز بعد بگذره. اوه بونش فردا نزدیک منه اوه بوندرا چه بچه خوبی دور روز بعد بگرده عزیز دلنا آبای کنار مزیف سر خوبیه ولی چرا توان تون نخافونده؟ اوه بونش فردا نزدیک من. آره عزیز دلن من مانتن. رفته بودن خرید یه خورده خول کشید آخه خیلی چیز رو برات خریدن حالا بخواف صفح همه رو میبینی مامان. بله تاب خریدن سرسره خریدن الله کلنگ خریدن الله جدا به من کلنگشن یکی دیگه داره میاره سنگیره دیگه من نمیتونم بیارم بخواف از این دل مهربون نیمه های شب کلا هم و کشیدن ستاره آسمونه قبونت برن ایچه اون ستاره آسمونه ایچه ای من چکن اونم ستاره است تا صوف هم بپرسی آسان فرو ستاره من رقص رو جارو کردن بهشون رو به مال به صاف کردن مامان. آره دیگه قربونت برن من مامانم دیگه مگه مامان چی دارن به روزتری سرن کردن دامن پوشیدن من مامانم دیگه من خستن زرش رستن جارو کردن الان هم باید بخواهن. تو هم بخواهن شفت لالا لالا بخونه به شرطی که آخوف. برابه خوف آخوف بخام بخواهن کردن چه تو براده خفتوش لا لا لا لا قله سردم ببین مامان چرا ترسَم لا لا لا لا مامانو دوست دارم اون اوناشرا منو دوست داشتی چنا نه خلاقای من زیرو میبوسه می <تصفت> بابا میخواد <تص أنت> چه گفتی؟ <Blues> ماماندار شدی حالا بابا گفتم این رو با سطن در بیار ماما شدی حالا بابا میخواد این بچه هست خیال میکنه رو به این راحتیه دختر رو دسته دسته به شوهر موندن کی میاد منو بگیره من دارم میرم یه جای کار دارم دود بر میگردم آقای موجی نایلون به دست میره دوباره بابا که بیاد بیافونه فوتبال نگاه کنه تا صبح خورخور کنه نظر ما بخافیم آخه بابا تو از من از کجا بیارن حالا قهر نکن دوباره بچه جان پسر خاله مشغول کندن زمین پسر خاله جان اینقدر نکن الان از سقف مترو میافتید پایین بیا بای من چی میگم بردختی داره چیه؟ بچه هم داره قله قله اکش میریزه مثل عفر بخارو پایین زمستون میگم که خب من که مامانه تن میگه نه بابا من باباش نمیشم کار دارم بای نبینی بابا میخوان نمیشه که من هم ماما باشم هم بابا انصاف به سنخانه جان چه گفتی؟ چی گفتی تا توانی دلی بیا دیگه بابا ای آره دیگه بابا تا اما سافرد اومده سنخاله یه سیبیل مصنعی گذاشته تا شبیه بابا ها من اومدم سام علیکم چه تیپ زده بابای بچه بقید از باز کار کرده سی ویلایش شده خب دیگه من باش برم سر کار اهه کی هنوز در نایمده باید سی بری سر کار خب بابا ها باید دارم سر کار دیگه بابای بچه جان بیا اقل نکن به بچه شعر این چیزی یاد بده ده خونه جلوی در ما یه خونه پونز ببین چی گفتی کی سرخاله یه دفتر رو میداده رنگی آورده تا برای بچه نقاشی بکشه چش چش تو ابرو دماغ و دهم یه گردو چوب چوب شکنبه <تصفيق> ای بچه هه قشنگه چی گفتم؟ ای این ها چیه یادش میدید منا نگاه بابا جان بچه دویدم و دویدم دویدم و دویدم سر کوئی رسیدن یه بچه هی را دیدن هیچ مادری ندیدن هیچ فدری ندیدن دو تا خاتو میدیدن، دو تا خانو میدیدن یک تیش به من آف داد، یک به من نون داد نونو خودن خوردن، آبو دادن به بچه بنجه کجاست تو باچه، چی میخوری آروچه، آروچه یه باقه آلا چش نکوری ایشالا، چش نکوری ایشالا نام دو اصاله بچه بچه بچه بچه نور خوشی کاره بچه نور خوشی کاره بچه بچه با تو عداب کشه عداب خوبه این بچه بچه ننست بچه بچه ننست بچه برمی نیز منه همیشه دو سال منه رو فلا می وفتونو شمه میتار بوکر رو, فلامی رو فلامی آف م م م م آفی خی م م م م دامی خی م م م م باقی می خی م م م م باقی می خی خوش خوش خوش هنی نازه پیازه که چاکیشو رو صیحونه آجینال فنگ می‌زنی گپنشش brayning می‌زنی Biolo'm named Regny می‌زنی می‌گه بابا می‌ناشیخو رنگ‌ناشت می‌هش می‌خوریم داشت داشت داشت داشت داشم من می‌گن که بابا شم من میگن که بابا شم من بفرامیم چه داشت داشت داشت داشت من باب اون اول من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 اگه به خاطر این بچه نبودا من میدونستم خودت سوختم و ساختم واسه این بچه من نمیتونم بچه نگردنم من نمیتونم دخس و مخشم همهش مونده منم نمیتونم چرا نخواه صرف میگیرن؟ آقای قیل یه حدی حد داره تو بسه منم نمیتونم کار دارم منم نمیتونم میتونی بهتون نمپلی نتون نمیتونی بهتونم خودتی فهمیدی ببینی چقدر خودتون رو گ ما خودمون کلی گرفتاری داریم اون از همسایه ها اون از پسر امه بابا یکی دست این بچه رو بگیره ببره بده به پولیس همون بشه بره که به زندان نه مگه شما خوشبختی این بچه رو نمیخواه چه ما خیلو خوب ببریم بدیم به پولیس پولیس میگرده مادرش رو پیدا میکنه بچه هم خوشبخت میشه پسر خاله بچه رو برد تحویل کر توی کلان تری سرکار اکبری بچه ننه رو روی میز نشونده و بره باش بازی میکنه پسر خانه جان چی شو؟ بسته نخو باش مهربون بودن پسر امم توی کلان تری داره سعی میکنی دستبندشو باز کنی شکار داری میکنی ماما کار یه بایست اینجا کار بایست اینجا تکنه نخو پسرم نزا چشمش به بچه کلا قرمزی میافته بچه کلا قرمزی؟ میتوشی کنم باید بچه کلا قرمزه؟ سکر؟ خوشک داری؟ خونه آقای مجری و کلا قرمزی آقای مجری از نمیم خیف و کارتون بیرون نکنه پسرم خونام داره باهاش حرف میزنه ای خیلی خوشکا پکره بسه خود باید خوشحالم باشه با همستی خوشحال باشم پلیس بچه همان گرفته میدونی چی پیدا کردم چی؟ دفترسی حساب پسنداز کلا قرمزی اه اه اه اه اه اینجا بانک توی بانک کلا قرمزی آقای موجی پشت باجه منتظره. چه بانک خوشن یه چه تانو من نعی برده بودی اینجا؟ دفرمایید اینم خدمت شما <تصفيق> همه این فوزا مال منه بله ایدیاته دیگه خانم میشه این دفتر بانکش سوخته اینو عوض کنه؟ بله حتما چرا سوخته؟ ما خیلی سختیم و ساختیم دیگه اکشن مداره چی تا داشته باشه؟ الان تیه کلان هست افسر نگه باید در اتاق سرکارکبری رو ای بابا اینجا چیکار کار میکنی؟ چی شده؟ پیششل قیافت اینجویه اون و اومده بود اینجا این بچه بود گم شده بودش کچولوه بو میداد بعد دیگه بو نمیداد خب متنفراری هم اومد اونم بودش ها اونم بود جفتشون با هم بودن بعد اومد یه دفعه دیدم نیستن یعنی فکر کنم اون متنفراری اون بچه که بو میداد می و بو نمیداد و فرار کرد اکلی من دست رو تو چی می بیا برای به تمام بیچارم بگو. اون مطمئن فراریدی که اون بچه گم داره دو زیده هر کجا دیدند است؟ که سرم به بچه ننه رو از تو کلانتری بر میداره و میری تو بانک پیش کلاقه قیل آقای مجریا پشت باجه داره با کارمند بانک صحبت ما واسه ازایی مزرکتر دار. یادوی یادوی بلا که نازدار من آوردی دستت نه. ما این نمیخوایم اینجا ریخته کنیش دیده نشه. دیوی. اینجا نشسته. اگه میبیند تابات کنها، آنها، آنها. ما پلیس پلیس اون بالا زندان. هنی، لای خدافه نازدار من قصه نخوری ما دیگه انقدر پول لار شدیم هر چی بخواییم دیگه برات میخرن چه دید؟ بابر کنیم ما برای بچه ها کلاس های آموزشی گذاشتیم که کار بانکو از همین بچگی یاد بگیرن یه بانک؟ آره یه بانک کوچولو براشون درست کردیم همین پایین نه که نه میخوای باسه من جان تعریف کنیم این بوان چیه را انداختی ماشین پلیس اطراف بانک رو محاصره کردن کارمند بانک برای آقای مرجی در مورد کلاس آموزشی میگه مبارکتون باشه شما بفرمایید با یه تو سر بگم اون بیان اینجا اون کلاس آموزشی که بهتون گفتم اینجا بچه ها با کار بانک حضوری آشنا میشن اصد پولیس به یکی از نیروهای ویژه که روی پشت بومه بیستی میزنه عزیز از اون بالا چی میبینی؟ بلو م با همون گروگان گرفته بچه ها تو کلیخه آمده حساب چی؟ هم باز کنم بسه هم پسه انداز چه ابلاغی؟ بیس هزار تا آقای به کارمند میگه؟ نیروی ویژه از روی پشه بمیده چه قبره؟ حسن که یه اتفاقی اصداده چی کام چایی بیدو پابی؟ آقای موجی بیان؟ نهی نیدم با بانک همه جنم فروانندور و از گوبر این روی از روی پشت بون افسر پلیس میگه نه نه برچه هر دو صاده میخواه خواهیش هم بیرون ها، آیا چه خوفه آقای موجی از بازدیدی کلاس برگشته و خبری از کلاقه امیزی نیسته گلست داره کلقه امیزی رو با خودش میبره اینجا کلان تریه اتاق بازجوی نازداره من چه کرده مگه اگه قول میده بچه خوفی باشه کلقه امیزی داره با خودش حرف بزن گنات داره آخه بچه خوفیه نازداره من چه همونجوری شو بچه همون بود کجا ببرید چه کلا قرمزی فانی چه کلا قرمزی نه تو کلا قرمزی نیسی تو پسرم می. باشه اگه پسرم می باشه به نخونه خیلی خوب یه باز جوده رو باز میکنه و با وارد اتاق میشه آخ آخ آخ دوباره یکی دیگه ازبه ببین بچه ما اینجا گنده ترسوهاشو به حرف آورد یعنی چقدی سلم اینجا آخر یعنی فیاندشم برن خونم اون اتوبوس بهتر حقیقتو بگی و خودتو خلاص کن. مگه من ماشین خلاص بشم برم بیافتم تو دره ما آقای کلاقه مزیم دیگه چرا اینقدر اصرار داری که اسمتو عوضی بگی؟ تازه اصلا اسم مهم نیست کارهایی که کردی خلافات اقرار کن پسرم به اقرار خونه مالی به شرط نیکه به کسی نگی یا نه <تصفيق> امرو آقای مرجین به من گفتش که هیچ وقت به بسایل شخصی من دست از ذقف اومد خونه نبود، آهت جاناباش آراده بود کنار اتاق من برداشتم پوچینه. فقط میخوااستم این تا کجا میاد بالا یه خوردم بو میداد. خوبف ا قراردار کردن؟ منو مسخره میکنین؟ چرا به درست گفتی اون بچمه در حالی که میدونستی اون بچه نیست؟ خب بچه خنممه انقدر بهش پرذا دادن نازدارمه. قول میده از این با همشه بشورمش لازم ن شرده بشوریش. جهت اطلاعی باید بگم که مادر اون بچه پیدا شده. مادرش عکس بچهشو تو تلویزیون دیده بعدش هم وکیل گرفته اومده اینجا و از تو به خاطر دزدی بچه چکایت کرد؟ه کدوم کانال؟ نه میگن یعنی بچم چقدر خوشحال میشه مامانش پیداه.قدر نگو بچم بچم؟ به بخش رو بیان. مادمه چه چلکیه خوک تو دادگاه میبینیش دادگاه ما احتراف میکنه اون موقع اصاف نداشتن یا خالی بودن دلاغ همیزی داره مقابل جمعیت داد. و قاضی حرف مزنه عزیز زن گفت چرا داد میزنی بعد اون داد زن هفه بعد زن من گلدون رو برداشتن اون یه چیزی برداشت حمله آپان اون حمله کرد جرزن گفتن قفول نیست ممنوچن بعد یه سری پرد کرد من نمیگم جا خالی دادن در پرونده گفتم موجود گفتن اون اشتباهی شو هستی انداخت آقای قاضی از پشت یه زونکن میگه گفتن عزیز دلم در پرونده شما اصلاً موضوع قتلون عنوان نشده آگه قتل هم انجام دادی خب, بله، خب ما دیگه اینجا دادگاهه بله اینجا دادگاهه و بنده ام قاضیه خب به همه چی اعتراف می‌کنن دیگه ولی شما متهم هستید به فرار از زندان به کرات و انفجار خانه مسکونی که شاکیان اینجا بله حال خوبم کی چیکار ها... قانون همچنین گروگان گیری بچه و سرقت بچه گم شده از دست خود پلیس. دفاعی از خواهیتون داریم دفعه حاج شما بزرگ همه ما ها هستیم هرچی بگی من قفول نکنم بعدش بچه همه هستیم حرف بزرگتر حرف بزنیم فقط بگیم حاج یه جوری این بحثت رو بگیر نه و بسوزه نه کباب نه گوجه نه دست خودت فهمیدیم بسیار خوب بسیار خوب پس قبول دارین و اقرار میکنین به اعمال زشتتون که باعث تشویش از هان عمومی شده اونی که اصاف عمومی من نمیدنه یعنی چی ولی بله تشویخ کردن کنسبت رفتن در تا فر من دا چند اعتراض میکنه تو <تصفيق> پرو دو تا سود اعتراض دارمره آقا یه خاضی ولیید باشارز دیگه هااجقا اکسان داره با تم داره تفره میره میخواد وقتی دادگاهو بگیره میخواد مسیر پرودار منحرف وکنه اعتراض وارده شما بفرماین بشیین متشکرم اعتراض وارده شما بفرمین بگی اونات با دو تا ماشین بودنسان؟ آقای ناشی به داخل دادگاه می ببخشید یه اشتباهی شده اینی که اینجاست کلاق قرمزیه من مطمئن اصلی رو آوردم پسرم من است ولی ایشون اقرار کرده که پسرم من است اینجا پسرم مزا و قرمزی سر میکروفون تو دادگاه با هم کلکل می کنم آقای قرمزی اینا رو ساکت خب خوره که نباری یک دانسه اعتراف می کنیم یک اعتراف ای بابا چرا ما بوپیت؟ بالا کنه بالا کنه. هی مین ای قاضی من دوست من. هی هی. بیا. مؤمنه. چه مؤمنین؟ تو ایدم ما این چه دفعه چیه رو سردی؟ ببینم کدوم از شما پسران ما هستین؟ پسران ما. شمایی؟ شما عزیزم بفرمایین بشینین. الان به ایشون رسیدگی میشه بعدش نوبت شما میشه نه فرمید بازی تا که هر قادم میخورن همه دیدم من خودم بوده هکی من داشته منشنگیسه اخفار صفت نکردن مانو که نم عزیزم به جرم شما هم رسیدگی میشه پروندهش اینجا شما الان بفرمایید با ایشون کار داریم شما از اتهاماتی که در پروندتون هست اطلاع دار شما متهم هستید به انفجار یک واحد مسکونی که شاکیان حضور دارند و فرار به چرات از زندان حالا از خودتون دفاع کنید از خودتون دفاع کنید دفو کن بچسا بچسا کوچوره بچلی ورش دا اوه الله عزیزم از خودت دفاع کن یعنی حضر بزن بگو که تقصیری نداشتی بگو که اون ماجه را به نمیخواستی اعتراض دارم آقای قاضی خود متهم باید دفاع بکنه اعتراض وارده شما خودت بگو ها؟ بچه کرد ما بی بی گفته بود که جوجه با جوجه با داشت بازی بکنم با داشت بازی بکنم با داشت بازی بکنم با داشت بازی بکنم اعتراض دارم ها؟ ما نمیفهمید چی میگه بارده ما خودمونم نمیفهمیم این چی میگه این بچه چرا صحیح و شموده صحبت نمی کنه قربان این کلاقرمزی میتونه بگه این چی میگه پس هرچی ایشون میگه شما برای ما ترجمه بفرمایید. شما بفرمایید به چه دلیل خونه رو منفجر کردین. اللاتش چی بود؟ آقا آقا قاضی اجازه بچه‌ها با همچین همچین ما بسیار خوب حالا شما بفرمایید ایشون چی گفت؟ چی میگه؟ چرا تخت میگه؟ چی یه میگه؟ یا عاشق هستن ها؟ بهش میگن عاشق بچه ها خیلی دوست دارن این این ها چیه اینجا داتگاه؟ این منصور بعدی نداره اگه اجازه بدین من میام بهش توضیح بدم. آقا فجیه تنها زارم. وارد نیست آقا وارد نیست. بذارین یه کسی درست صحبت کنه ما بفهمیم موضوع چی بوده. شما بفرمایید بگید موضوع چی بوده؟ آقای موجی موزی پشت میکروفون میاد. سلام از سلام این پسرم عید اومد منزل ما بود نرفت. اینا عادت دارن یه آش محلی درست اسم میکنن اسمش آش خشتکه. خیلی خوشمزه. آره خیلی خوشمزه. آش خشتکه. دارم میگم. حالا چه زいで من صحبت بکنم چاش. بله، ایام عید بود و ما با همین همسایه های محترم. رفته بودیم گردش این بچه با ما نیومد. گفت میخوام بمونم خونه ما دست جمعی رفتیم بیرون و این تصمیم گرفته بود همون آش محلی رو درست بکنه. رفته بود هیز و بود توی اجاق گاز و رفته بود بیرون که ترپسیا بخره که خونه منفجر میشه. من خواهشم اینه که بچه ها به گاز دست نزنن. هیزم چرا, چرا میذاری تو که هست؟ آقه چرا؟ چرا چیزی که بلد نیستی بهش دست میزنی؟ چرا ما رو در به در کوچه و خیابون کردی؟ چرا ما رو به این روز رسوندی؟ چرا ما رو به این خفرت کشوندی؟ چرا؟ معذرت اشتفاق کرده بخشیدش بله من میبخصم بخصیدم با کرده ولی یکی به من بگه من چجوری تو چشم این همسایه هم نگاه کنم پسر خاله سرش از زیر یه میز بیرون میاره من میگم شما دیگه کی هستی؟ به من میگن پسر خاله وکیله اینا کی شما رو وکیل کرده؟ همه ای اونایی که اینجا هستن اگه قبول دارن من وکیل اینا باشم از جا چون بلند شم. همه حضوری تو دادگاه میستن خوب بسیار خوب بفرمیم بفرمیم داشین الان همه سر جوشونشی بفرمیم پسر خالی شروع به صحبت مده خیلی ماره. خوب حالا شما بفرمیم این پسرمه به گاز دست سده اشتباه خونه منفجه همسایه ها شکایه همه در بده یه مرچه یه دونه داره میبره خونهش باد میاد و دونه رو میبره اتفاق یه گربه میاد لبه خوز ماهی بگیره هه میافته تو هست <هوز> اتفاقه اتفاق اتفاقه دیگه میافته این آقا که اینجاست تو کنار خیابون میخوابه آقای مجریه به خاطر مهمونش که این باشه کنار خیابون میخوابه قرص حساب میخوره یعوشکی تا به ما بخنده ناراحت نباشی هزاره تو دادگاه آروم آروم گریه میکنن به من میگم پسر خاله نوم خواستی گرفتم نفت خواستیم گرفتم تا حالا کسی دیده من از کسی چیزی بخوام نه نخواستم اما حالا اما اما حالا میخوام میخوام بزرگی کنید و... این بچه را ببخشی بخشش از بزرگونه جای بچه ها زندان نیست تمام آقای قاضی که تحت تاثیر قرار گرفته میگه شاکیان محترم آیا حاضرید از شکایت خودتون صرف نظر کنیم؟ همسایه ها با همدیگه مشورت میکنن جناب قاضی با مشورتی با همسایه های محترم داشتیم از شکایتمون گذشتیم بخشیدیمشون همه حوزا نیستن و دست و سوت میزنن آقای قاضی آزادی پسر امنزار رو اعلام میکنم ساکت ساکت ساکت بفرمایید. به هر جهت خوشحالیم که شاکیان محترم رضایت دادند و متهم به نام پسر امه آزاد شد اما زنی ازمینیم کمیت اعتراض بله میکنیم همون پسر امه زاد اعتراض هم آقای غازی پس شکایت ما چی میشه شما بنده وکیل اون مادری هستم که این محترم برچه رو دزدیده. کی من بله شما این متهم با نقشه قبلی به خاطر ثروتس اون ما در اقدام به دزدیددن بچه کرده تا با گرفتن پول به مال برسه بررسه. مال منار چیه؟ من این بچه رو پیدا کردن پیدا نکرده دزدیده و چرا حال بچه الان نقب بده؟ چرا تب داره چرا میتابه؟ خ معلومهشه پنجق می شده. دادگاه باید به این کنه به هر حال این جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده پسرمه بوده. زا پسرم مجا بله. و تهم بعدی در جلسه بعد دادگاه محاکمه خواهد شد ختم دادگاه اعلام میشه قاضی اینجا ختم دادگاه رو اعلام میکنه بزرگ جلسه دادگاه رو ترک بچه هم مریضه شبه کلا قرمزی تو بازداشگاه آواز میخونه و خاطراتش با بچه ننه رو مرود نی نه میسی مانه پاچ نه میسی چه آساله دادگاهه جلسه هست آقای قاضی داره صحبت میکنه سکوت شما مسئلهی رو حل نمیکنه عزیز دلم اگر سکوت کنین یعنی شما دزد بچه هستین و به خاطر سرقت بچه باید سالهای سال بری زندان عزیز. آقای موجی میگه خب بگو دیگه شما بفرمایید که چرا بلا قیل هم جواب میده که من ندزدیدم دزدی کار بدیه من پیداش کردم، قام شده بود قصده میخون ولی اگه اینجوریه که هرکه یه پیدا کرد با اصلی بره زندان من دیگه قول میدم اگه یه پچه پیدا کردن و کنم بریم هم تو آه تو دادگاه از حرفای های کلاه میزی متاس صفا سیت انسانیت خفنی مهربونی بده. نه شیر بهش میده. نه می گردش. نه براش آباد میخورنم. فقط فقط؟ مییه گوچه طرنا ک باقای قاضی از کللا به میزی که این آخرین دفاعتونه نمیخواین از دادگاه طلب بخشش بکنید شاید مادر اون بچم شما رو بخشید؟ نه نه خواه. من فقط میخوام با آخری ما بچم رو ببینم پوسش کنن نازش کنن. ها؟ اصلا این بچه کجاست مادرش کجاست اینجا مادر بچه ننه تو دادگاه حاضر میشه سالایی حالت خوبه؟ من خیلی کار دارم حاج آقا رفتن زود بپرسین باست برم مهمونی شایست انتوال شایسته هم خارج میشه جنابالی خودتون رو معرفی بفرمایید بایدی بیدی پسرم میزنید. میگه؟ ایم ایم. من خانم گل قرمزی هستم مادر بچم آیا شما قبلا این متهم رو دیده بودید؟ یا آشنایی قبلی داشتین واش اینجا رو یه این لحظه نگاه مادر بچه ننه و کلا درست با هم, هم <تصفح> <تصفح> سر چهخبرشه اون که شوهر منی، فقط اون چاق بود این لاقبم اون بعد اخلاق بیاور بود این به این خوفی اون منرا با بچه تو سیاه تابون بل کپ با موشه کارخونه من فران ک و خارش نید من کجا؟ اما افا نید من که هست اسم شما چیه؟ من آی کنا قرمزی از چرا ادعا کردی که این مبر بچه شما رو دزدیده؟ خب معلومه دیگه تو فیلم اینجوریه هر کی فوندار واسه من بعد من باعثش راست میگه دیگه من خندم دینم تو فیلم ها. شما چه جور فیلم دوست داری؟ من رو من چه خخشی آخی من آ آهنگی دوست کمی شاد دوست ما نه ولی ی کم شادتر تر من دوست دارید رو به شاکی آقای متهم سرش چی داشتین به همه گفتین اونجا اینجا دادگاهه. آقا نخاف صاحب مکان، لطفاً ماو. این راسته دیگه ها ما که تو پارتیا خیابون یا تو دیدیش، فرموز دانشینان که سیم دنبه با ما حرف بزنین که جانوی روی خودت تا این شوم فرب نکنین دیگه. عجب گرفتاری شدیم. این چه پرونده ی آخه؟ خانوم محترم مادر مهربان، وکیل شما ادعا میکنه بچه ربوده شده، شکنجه ی روحی شده. آیا الان حالش خوبه؟ اول که اومد خونه حالش خوب بود بعد که خواست بخوابه رو تختش نخافید رفت و همون خافید بعد رفتو و آشواز رفتو آخر تو رفت حیاتو تو خاک و خلا خافید همش آسمون رو نگاه میکرد بچه آخه بچه عادت کرده آسمون رو ببینه همش میگفت کلا میخوام بچه منو میخواسته بچه اه. بچه هم باز بس کجا جا گذاشتم مگه بچه هم تون رو جا بچه که خوفه، نمیدونه چه چیزایی جا میذارم چی؟ اصلا بابرت نمیشه موبایلم و کیفم و جواهرات گرون گرون جا میذارم بچه که خوبه از نظر دادگاه متهم بیگو <تصفيق> امیدوارم باز چمدانم رو پیدا کنین اگه پیدا کنه دوباره منو یزدنی من چه گفتم تو شبیه تو که فرشته هست عزیزم منامت عالی الان پیدا اینجا خونه آقای موچی و کلا قرمزی مادر بچه به همراه کلا قرمزی به خونه موقتی کنار خیابون اونها اومده تا بچه رو پیدا کنه. چقدر خونه مادر خارجی قشنگی داری؟ بح تازه کنجاش دیدی؟ باد و بارون میاد خارجی ترم میشه بچه <تصالح> ناز داره ممه پاتورو کنو هستم وقتش جای من کافی بیا امره بی تعضیت دوباره اومدتون جای من تاخت بزنی روی من چه سفیدی می‌کنی وای سینما رو میگم برو دیگه <تصالح> ای؟ به این خلااده رهه این عاشق خانوم این مرغ بی پشتشو میکنه وادن صحبت میکنه از کجا میدونی به اینجا یادم اومد مامات همینجا ها واس باشه علامم فهمی نه کجاس کجا رفتی واسه اگه من با این کفش نمیتونم می بیام بچه ننه روی یه تخت سنگ نشسته و داری با فرشته ها صحبت میکنه دیسته آخه دانی با فرشته ها من حرف میزن اینا زن. با این فرشته ها صحبت نکن بعد وقت آباره میشی آخرا برطا زندان به اینا چی کار داری؟ چی میخواستی ازشون؟ دو افرشت ها میخواستی منو فیدان کنه تو گم شده بودی منو پیدا کنه من که گم نمیشن خودت گم شده بودی مادرت دنبالت میگشت حالا کجا رفته بودی سندر دولت دفت آخه رفته بودی با سه من کفش بخری چه قشن دستت دفت نکنه داده میدونم تو آنها خیلی دوست داری ولی کنیتی دیگه دیگه این دیگه نیی پایدار، پایدار. چی چی؟ باند چهش تا بانلو دنگی نه؟ کلاپیدا نکه چه داری؟ بیای، ی از آلمان کنار خابون میخواد. یه سری از آلما معلوم نیست که این ثر های باورد از توجا بردن بیا همچین جاشن تولد بزرگی برای یه بچه اققی می حالا میریم با یکی از این دونه دورست های ثروت گزارش بیرون جلوی در یه خونه خیلی بزرگ و قشنگ داره گزارش گزارش هم میاد طفونه با میری طرف کللاه امزی که بچه منن رو بغل کرده و داره باهاش سر پر آ بزن بریمش بفرماییم همه ثر از چرانی بر سوردیم؟ بچه داری یعنی خارج از کشور سرماگذار کردیم؟ نه بابا مداره اینقدر بد وقتختم بدبختی داره شما با این همه ثروت بدبختی میکنی؟ و خیلی بدخته این بچه ثروتش را به اسم کرده چند داده ساخته اونا داده ما میدونین که کن کنار خیامون زندگی میکنن چه حالی دارن و چه جوری زندگی میکنن؟ نه ندیدن ندیدن اونایی که ماقعات تو وقتخت حافشون تخت میذاره؟ بلهله نه نه بنده معیده؟ به نظر شما درست همچین ای بشه برای تولد یه بچه قندقی حالا شما حرص نه نخواهی شما بیا برای مالاتو که منم در همبای شما گرد داره هم باشی برشتگیان یه آرق بزن آفروفون رفت تفلانت مبارک خوش بین تولد تولد تولدش مبارک چی من میشنویم؟ شان چون اشان دو نفر داشت به کسی مامان جونه دبینه ماما نفرش وی تا chama chai soida soida soida maga poli soida gobah ay momo na taman lo de gobah taman lo taman lo taman lo خوب با تشکر از شما شنواندگان عزیز که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و با ما همراه شدید تهیه کننده محترم برنامه آقای فرشاد آزنیا صدا بردار عزیز برنامه جناب آقای علی حاجی نوروزی و من سیما خوشششم راوی و نویسنده این قسمت از برنامه تا برنامه بعد خدایا رو نگه حداره.